آژانس مسافرتی بهاران بفرمایید الو سلام ببخشید آقای بیانی تشریف دارن؟ سلام نه خیر ایشان الان در آژانس نیستند می دانید که برمی گردن؟ مطمئن نیستم شاید بعد از ظهر چه ساعتی؟ هیچ اطلاعی ندارم ببخشید شما؟ من محمد دوست آقای بیانی هستم برای ایشان پیغامی دارید؟ نه مهم نیست من بعد از ظهر دوباره تلفن می کنم خدا حافظ خدا حافظ آجانس مسافرتی بهاران بفرمایید؟ الو سلام آقای بیانی تشریف دارن؟ من محمد دوست ایشان هستم بله ایشان الان اینجا هستند. چند لحظه؟ خیلی ممنون. الو، آقای محمد، ایشان الان با تلفن صحبت می کنند. لطفا منتظر بمانید. باشه، منتظر میمونم. خیلی ممنون خانم؟ خواهش می